اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لامیم به نام خدابند بخشنده بخشایشگر الف لام مین ذالیک الکتاب لا ریب فی هدلی المتقین آن کتاب با است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون هرگیز کاران کسانی هستند که به قیب، آنچه از حس پوشیده و پنهان است ایمان می آورند، و نماز را بر پا و از تمام نعمتها و موهابی که به آنان روزی داده ایم انفاق میکنند والذین یؤمنون بما انزل الیك و ما انزل من قبلك و بالآخرة و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو بر پیامبران پیشین نازل گردیده ایمان می آورند و به رستاخیز خیز یقین دارند اولائک علی هدمن من و اولائک هم المفلحون. آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَعَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کسانی که کافر شدند برای آنان تفاوت نمی کند که آنان را از عذاب الهی بترسانی یا نترسانی ایمان نخواهند آورد ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوت و لهم عذاب عظیم خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده و بر چشمهایشان پرده ای افتنده شده و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هم, هُمْ بِمُؤْمِنِينَ گروهی از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده ایم در حالی که ایمان ندارند يخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون میخواهند خدا و مؤمنان را فرید دهند در حالی که جز خودشان را فرید نمیدهند اما نمیفهم فی قلوب هم مرد فزادهم الله مردا و لهم عذاب علیم بما کانو یکذیبون در دلهای آنان یک نوع بیماری است خداوند بر بیماری آنان افزوده و به خاطر دروغ هایی که میگفتند گفتند عذاب دردناکی در انتظار آنهاست.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 огоҳ бошед инҳо ҳамон муфсидананд вале намефаҳмам ва иза қила лаҳум ааману кама аамана аннасу қалу لهُم هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ و هنگامی که به آنان گفته شود همانند سایر مردم ایمان بیاورید میگویند آیا هم چون ابلهان ایمان بیاوریم بدانید اینها همان ابلها نند ولی نمی‌دانند و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمننا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون و هندامی که افراد با ایمان را ملاقات میکنند میگویند ما ایمان آورده ایم. علی هنگامی که با شیطان‌های خود خلوت می‌کنند می‌گویند ما با شما این ما فقط آنها را مسخره می‌کنیم الله و یمدهم فی خداوند آنان را استهزا کند و آنها را در طغیانشان نگه می‌دارد تا سرگردان شوند <تصفح> اولائی که الذین اشترهم ضلالت فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا محتدین آنان کسانی هستند که هدایت را به گمراهی فروخته و این تجارت آنها سودی نداده و هدایت نیافتند بثلهم که مثل اللذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولهو ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون آنان منافقان همانند کسی هستند که آتشی تا در بیابان تاریک راه خود را پیدا کند ولی هنگامی که آتش اطراف او را روشن ساخت خداوند طوفانی میفرستد و آن را خاموش می کند و در تاریکی های وحشتناکی که چشم کار نمی کند آنها را رها می ساخت summun bukmun anum yun fahum la yarji'un anha karan gunkha va kuranand liza azraha khata baz nemigerdand um kan sunibin minas samai fi dhurumatun wa یجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یا حمکن بارانی از آسمان که در شب تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه بر سر رهگذران ببارد آنها از ترس مرگ انگوشتانشان را در گوشهای خود می تا صدای سائق را نشنوند و خداوند به کافران احاطه دارد و در قبض قدرت او هستند یکاد البرق یختف ابصارهم کلما اضاء لهم مشو فیه و اذا اظلم عليهم قاموه و لو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصاریم این الله علا کل شیئین قدیر روشنائی خیر کننده برق نزدیک است چشمانشان را برو هر زمان که برق جستن می و صفحه بیابان را برای آنها روشن می سازند چند گامی در پرتو آن راه می و چون خاموش می شود توقف می کنند و اگر خدا بخواهد گوش و چشم آنها را از بین می چرا که خداوند بر هر چیز تواناست یا ایوهن نه صع بودو را بک الذي خ بک وال الذي نه اون قابللی کوله گ تدبون ای مردم پروردگار خود را پرستش کنید آنکس که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزگاه شد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 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِي مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ آن کس که زمین را بستر شما و آسمان را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد. از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن میوه ها را پربرش داد تا روزی شما باشد بنابراین برای خدا همتایانی قرار ندهید در حالی که میدانید یک از آنها نه شما را آفریده اند و نه شما را روزی میده وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلَّا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ, إن كنتم صَادِقِينَ Vahayar درباره باره آنچه بر بنده خود پیام بر نازل کرده ایم شک و تردید دارید دست کم یک سور همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا برای این کار فرا خانید اگر راست میگوید فا این لم تفعلو ولن تفعلو فتقون نهرالتی و قوده الناس فاتق النار التي و قودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. پس اگر چونه نکنید که هرگز نخواهید جرد از آتشی بترسید که هیزم آن بدنهای مردم گناهکار و سنگ هاست و برای کافران AMANI SHIHALAZT Wabashjeri al-lazina amanu wa'amilu s-salihata anna lahum jannat anna lahum jannat dejri min tachtihal anhaog kull ma ruzigu minhaa min thamarat QALU HADA LLU ZIGNA MIN QABILU WA UTUBHI MUTASHABİHA VALAHUM FIHA AZWاج MUTAHQRATUN وهم FIHA KHALEDUN به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند بشارت ده که باغهایی از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختانش جاری است هر زمان که میوه از آن به آنان دا شود میگویند این همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود و میوههایی که برای آنها آورده می شود همه یک سامنند و برای آنان همسرانی پاک و پاکیزه است و جادانه در آن خواهد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 ی غلوبی کسی را و هدی می کسی را و معی خداوند از اینکه به موجودات ظاهند کوچکی مانند پشه و حتی کمتر از آن مثال بزند شرم می کندند. در این میان، آنان که ایمان آوراند میدانند. که آن حقیقتی است از طرف پروردگارشان و اما آنها که راه کف را پیموده اند میگویند منظور خداوند از این مسل چه بوده است آری خدا جمع زیادی را با آن گمراه و گروه بسیاری را هدایت میکند ولی تنها فاسقان را با آن گمراه میسازد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون و يقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض اولائیک هم الخاسرون فاسقان کسانی هستند که پیمان خدا را پس از محکم ساختن آن می شکنند و پیوندها ای را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع نموده و در روی زمین فساد می کنند اینها زیانکارانند گیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فأحیاکم سمه یمیتکم سمه یحییکم سمه الیهی توجعون چگونه به خداوند کافر می در حالی که شما مردگان و اجسام بیروهی بودید و او شما را زنده کرد سپس شما را می می و بار دیگر شما را زنده می کند سپس به سوی او بازگردن بمی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى ثم استوى الى السماء فسواها سبع سماوات وهو بكل شيء عليم او خدائيست كهمه آنچرا از نعمت در زمین وجود دارد برای شما آفرین سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است و ایز قال ربک للملائکت اینی جاعل فی الارض خلیفه اتجعل فيها من يفسد فيها و يزفک الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من در روج زمین جانشینی قرار خواهم داد فرشتگان گفتند پروردگارا آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟ زیرا موجودات زمینی دیگر که قبل از این آدم وجود داشتند نیز به فساد و خونریزی آلوده شدند اگر هدف از آفرینش این انسان عبادت است، ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم فروردگار فرمود من حقایقی را می که شما نمیدانید دانید و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکت فقال فقال انبعونی بی اسمائی ها اولائی سپس علم اسما علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات را همگی به آدم ها مخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست میگویید اسامی اینها را به من خبر دهید قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت فرشتگان عرض کردند منزهی تو ما چیزی جز آن چه به ما تعلیم دادی نمی دانیم تو دانا و حکیم قَالَ يَا آدَمُ أَنبِهِم بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لكم, لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ و اعلم ما تو بدون و ما کنتم تکتمون فرمود ای آدم آنان را از اسامی این موجودات آگاه کن هنگامی که آنان را آگاه کرد خداوند فرمود آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را می دانم و نیز می دانم آنچهرا شما آشکار میکن و آنچه را فنهان میاشتید و الملا اینتیول دم فجدلابللابل بر منافین و من یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم. برای آدم سجده و خضوع کنید همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد و قلنا یا آدم اسکن انت و زوج کل و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین و گفتیم ای آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از آن از هر جا می خواهید گوارا بخورید اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين پس الشيطان موجب لفظش آنها از بهشت شد و آنان را از آن چه در آن بودند بیرون کرد و در این هنگام به آنها گفتیم همگی به زمین فرود آئید در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهر برداری خواهد بود فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه سپس آدم از پربرگارش کلماتی دریافت داشت و با آنها توبه کرد و خداوند توبه او را پذیرفت چرا که خداوند توبه پذیر و مهبان است قل له بطو منها جميعا فا اما يأتینکن مننی هدن فمن تبع هدای فلا خوف عليهم فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هدایتی از طرف من برای شما آمد کسانی که از آن پیروی کنند نه ترسی آنهاست و نه قمگین شوند وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود ینی سرائلت كون عمد التي أنعمت عليكم ووفو بدی ووفو بدی اوف بیادكم وائفرحبون ایی فرزندان اسرائیل نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید. و آمنوا بما انزلتم صدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشترو بآیاتی ثمنا و ایا و به آن نازل کرده ام قرآن ایمان بیاورید که نشانه های آن با آنچه در کتاب های شماست متابفت دارد و نخستین کافره به آن نواشید و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید و تنها از من بترسید ولا لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون و حق را با باطل نییا میزید و حقیقت را با اینکه میدانید کتمان نکنید و عقییم و زکتعم عرو و نماز را به پا دارید و زکات را بپداوید و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید اتأمرون الناس بالبر و انفسكم و تتلون الکتاب افلا تعقلون آیا مردم را به نیکی دعوت می اما خودتان را فراموش می نمایید با اینکه شما کتاب آسمانی را می خانید آیا نمی اندیشی و استعینوا بالصبر والصلاه و اینها لکبیرتون الا علالخاشعین از صبر و نماز یاری جوئید و این کار جز برای خاشعان گرام است الذین يظنون انهم taqu rabbihim wa annahum ilayhi rajiaun anha kasani hastand ki midanand didar konande parvardegar khishand va be suye u baakh mikardand ya bani isra ila zkuruna nimati allati anamtu و انی فضلتكم علی العالمین ای بنی اسرائیل نعمت مرا که به شما عرضانی داشتم به خاطر بیاورید و نیز بیاورید که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعه وَلَا يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ و از روزی به تفسید که کسی مجازات دیگری را نمی و نه از او شفاعت پذیرفته می شود و نه قرامت از او قبول خواهد شد و نه یاری می شود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 آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم که همواره شما را به بدترین صورت آزار می دادند. پسران شما را سر می و زنان شما را برای کنیزی زنده نگه می داشتند و در اینها آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود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 و اذ وعدنا موسى اربعین لیلتا ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون و به یاد آورید هنگامی را که با موسى چهل شب وعده گذاردیم و او برای گرفتن فرمانهای الهی به میادگاه آمد سپس شما گو سال را بعد از او معبود خود انتخاب نمودید در حالی که ستمکار بودید ثم عفونا من بعد سپس شما را بعد از آن بخشیدین شاید شکر این نعمت را به جا آورید و اذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون و نیز به خاطر هنگامی را که به موسى کتاب و وسیله تشخیص حق از باطل را دادیم تا هدایت شدیم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 و زمانی را که موسا به قوم خود گفت ای قوم من شما با انتخاب گو ساله به خود ستم کردید پس توبه کنید و به سوی خالق خود بازگردید و خود را به قتل برسانید این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است سپس خداوند توبه شما را پذیرفت زیرا که او تو به تذیر و رحیم است وائذ قنت ياوسلا نُؤمِ لك حتىن الله ج فخذتكم الصعقدنت فخذتك الصعن ق ونتم د و نیز به یاد آورید هنگامی را که گفتید ای موسا ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. مگر اینکه خدا را آشکارا با چشم خود ببینیم پس صاعقه شما را گرفت در حالی که تماشا می کردید. ثُمَّ دَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شما را پس از مرگتان حیات بخشیدیم شاید شکر نعمت او را بجا آورید و ضللنا عليكم الغمام و انزلنا و انزلنا عليكم المن و السلوى کلو من طیبات ما رزقناكم و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم يظلمون شما قرار دادیم و من شیره مخصوص و لذیذ درختان و سلوا مرغان مخصوص شبیه کبوتر را بر شما فرستانیم و گفتیم از نعمتهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید. ولی شما کفران کردید. آنها به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم می نمودند. و اذ قل ادخلوا هذه القرية فکلوا منها حیث شئتم رغدا و ادخلوا الباب سجدا و قولوا, و قولوا حطتن نغفر لكم خطایاكم و و به خاطر بیاورید زمانی را که گفتیم در این شهر بیت المقدس وارد شوید و از نعمت های فراوان آن از هر جا میخواهید بخورید و از در معبد بیت المقدس با خضوع و خشوع وارد گردید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز تا خطا های شما را ببخشید و به نیکو کاران پاداش بیشتری خواهیم داد فبدل الذین ظلمون قولا غیر الذي قیل لهم فانزلنا فانزلنا على الذین ظلمون رجزا من السماء بما كانوا يفسقون اما افراد ستمگر این سخنرا که به آنها گفت شده بود تغییر دادند لذا برست همگران در برابر این نافرمانی عذابی از آسمان فرستادی و اید استسقا موسا لقومی فقل اغرب بعصاک الحجر فانفجرت من هثنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم گلوشراو میرریزقیله ولا تس او فیل آقی مفسیدیم و به یاد آورید زمانی را که موثاح برای قوم خیش آب تلید به او دستور دادیم عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن ناگاه، دواز ده چشمه آب از آن جوشید آنگوونه که هر یک از توایف دوازدهگانه بنی اسرائیل چشمه مخصوص خود را می شنافند و گفتیم از روزی های الهی بخورید و بیاشامید و در زمین فساد نکنید وَإذْقُْلتُمْ ييا مُوسَلًَا نَّصببِرَعَلَى طُعَامُِ وَاحِدٍ فَدْعُ لَا رَبَّكَ يُخرِجِلَنا مَِّ تُمْ بِتونُ الْ الأرضْضُ مِنْ بَقُلهَا مِنْ بَقُلهَا وَقِث إِهَا وَفُومِهَا وَعددَسِهَا وَدَصَِهَا.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 ذالك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بنیز بخاطر بیاورید زمانی را که گفتید ای موسی هرگز حاضر نیستیم به یک نوع قضا استفا کن از خدای خود بخواه که از آن چه زمین می رویاند از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیازش برای ما فراهم سازد موسا گفت آیا قضای پستر را به جای قضای بهتر انتخاب می در شهری فرودایید زیرا هر چه در آنجا برای شما هست و محره ذلت و نیاز بر پیشانی آنها زده شد و باز گرفتار خشم خدایی شدند چرا که آنان نسبت به آیات الهی کفر می و پیام بران را به ناحق می کشتند. اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند إَِّينَ آمَنُوا وََّذينَهَادُ وََّ صَارَ وَ الصَّابئينَ مَنْ آمَن مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَْيَوْومِآخِرِ وَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجرُهُم فَلَهُم أَجرُهُمْ معدَ رَبِّهم وَلَا خَْفٌ عَلَيْهِم وَلهُم يَحْزَنون. کسانی که به پیام بر اسلام ایمان آوردند و کسانی که به آین یهود گرویدند و نصارا و سابعان پیروان یهیا هرگاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است و هیچ هیچگونه ترس و اندوهی برای آنها نیست و اذ اخذنا میثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذو ما آتيناكم بقوة و اذکرو, و اذکرو ما فیه لعلكم تدقون و بیاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم و به شما گفتیم انچرا از آیات و دستورهای خداوند به شما دادیم با قدرت بگیرید و آنچرا در آن است به یاد داشته باشید و به آن عمل کنید شاید پرهیزگار شوید ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لکنتم من الخاسرین سپس شما پس از این روی گردان شدید و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود از زیانکاران بودید وقد علمیم تو الذيین عددم او می کومفی سی فقول نلم اونکنو به طور قطع از حال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند آگاه شده اید ما به آنها گفتیم به صورت بوزینه هایی ترد شده درائید لما خلفها ما این کیفر را درس ابرتی برای مردم آن زمان و نسلهای بعد از آنان و پند و برای پرهیزگاران قرار دادیم و از قال موسی لقومه این الله یأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین و بیاد هنگامی را که موسا به قوم خود گفت خداوند به شما دستور می دهد ما را زبه کنید و قطعی از بدن آن را به مقتولی که قاتل او شناخته نشده بزنید تا زنده شود و قاتل خیش را معرفی کند و قوقا خاموش گردد گفتند آیا ما را مسخره می کنیم؟ موسا گفت به خدا پناه می از این که از جاهلان باشد قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال ولا مكر عوان بين ذلك فافعلوا گفتند پس از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند این ما گاب چگونه ما دگاوی باشد؟ گفت، خداوند می فرماید، است دگاویست که نپیر و از کار افتاده باشد و نبکر و جوان، بلکه میان این دو باشد. آنچه به شما دستور داده شده، هرچه زودتر انجام دهید. قَالُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ, فاقع لَوْنُهَا تَسُرُونَ نَاغِرِينَ گفتند از پروردگار خود بخواه که برای ما روشن سازم رنگ آن چگونه باشد گفت خداوند میگوید گابی باشد زرد یک دست که بینندگان را شاد و مسرور ساخت قال و دع لنا ربك يبين لنا و انا و انا گفتند از خدایت بخواه برای ما روشن کند که چگونه گاوی باید باشد ذرا ان گاو برای ما مبهم شده و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف ولا تسقي الحث مسلمه لا شيه فيها قال انا جئت بالحق سجدحوها وما كادوا يفعلون گفت خداوند می‌فرماید گاوی باشد که نه برای شخم زدن رام شده و نه برای زراعت آب کشی کند از هر عیبی بر کنار باشد و حتی هیچ گونه رنگ دیگری در آن نباشد گفتند الان حق مطلب را آوردی سپس چونان گاوی را پیدا کردند و آن را سر بریدند ولی مایل نبودند این کار را انجام دهند و ایف قتلتم نفسا فد دارعتم فیها و الله مخرج ما کنتم تکتمون و به یاد آورید هنگامی را که فردی را به قطر رساندید سپس درباره قاتل او به نزا پرداختید و خداوند آنچه را مخفی می داشتید آشکار می سازد پس فرمودیم پاره ای از آن گاب سربریده را به آن مقتول بزنید تا زنده شود این گونه خدا مردگان را زنده می کند و آیات خود را به شما می نمایاند باشد که بی اندیشید ثم قصد قلوب کم من بعد ذلك فهی کل حجارت او اشد قسوه و این من الحجارت لما یتفجر منه الانهار و اِنَّ مِنْ هَالَ مَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْ هُلْمَاء و اِنَّ مِنْ هَالَ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّه وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون سپس دلهای شما بعد از این واقع سخت شد همچون سند یا سخت تر چرا که پاری از سندها می و از آن نهرها جاری می شود و پاری از آنها شکاف بر می و آب از آن تراوش می کند و پاری از خوف خدا از فراز کوه به زیر می افتد. اما دلهای شما نه از خوف خدا می تپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانی است و خداوند از اعمال شما غافل نیست. فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آیا انتظار دارید به آئین شما ایمان بیاورند با این که ادعی از آنان سخنان خدا را می‌شنیدند و پس از فهمیدن آن را تحریف می‌کردند در حالی که علم و اطلاع داشتند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 و هنگامی که مؤمنان را ملاقات کنند میگویند ایمان آورده این. ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت می کنند میگویند چرا مطالبی را که خداوند درباره صفات پیامبر اسلام برای شما بیان کرد به مسلمانان وااسگویی می کنید تا روز رستاخیز در پیشگاه خدا بر ضد شما به آن استدلال کنند آیا نمیفهمید و لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون آیا اینها نمی خداوند انچرا پنهان می دارند یا آشکار می کنند می دانند و منهم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا يظنون. و پاری از آنان عوامانی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمی و تنها به پندارهایشان دل بستند فویل للذین یکتبون الکتاب بی ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو بیه لیشترو بهی ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون پس وای برانها که نوشته ای با دست خود می نویسند سپس میگویند این از طرف خداست تا آنرا به بهای کمی بفروشند پس وای برانها از آن با دست خود نوشتند و وای برانان از آن از این راه به دست می آوند و قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تقولون علالله ما لا تعلمون و گفتند هرگز آتش دوزدخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید بگو آیا پیمانی از خدا گرفته اید؟ و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی برزد یا چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت می دهید؟ بلا من کذب زیعتا و احاطت به خطیعته فا اولائک فا اولائک اصحاب النارهم کسانی که مرتکب گناه شوند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند آنها، اهل آتش‌اند و جابدان در آن خواهند. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائک اصحاب الجنه هم فيها خالدون و آنها که ایمان آورده و کارهای شایست انجام داده‌اند آنان اهل بهشتند و همیشه در آن وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ قَوْمِنَا اِلَّا لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِى القربى. وذی القربا والیتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قليلا منكم و انتم معرضون و بیاد آورید را که از بنی پیمان گرفتیم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 و اذ اخذنا میثاقكم لا تسفکون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دیاركم ثم اقررتم, ثم اقررتم و انتم تشهدون و هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون همرا نریزید و یک از سرزمین خود بیرون نکنید سپس شما اقرار کردید و بر این پیمان گواه بودید ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم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 فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم الا خزی في الحياة الدنيا و يوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون اما این شما هستی که و جمعی از خودتان را از سرزمینشان بیرون میکن و در این گناه و تجاوز به یکدیگر کمک مینمارید در حالی که اگر بعضی از آنها به صورت اسیران نزد شما آیند فدیه می دهید و آنان را آزاد میسااسید با اینکه بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود. آیا؟ به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می آبرید و به بعضی کافر میشوید برای کسی از شما که این عمل تبعیض در میان احکام و قوانین الهی را انجام دهد جز رسوائی در این جهان چیزی نخواهد بود و روز رستاخیز به شدید ترین عذاب گرفتار میشوند و خداوند از آن چه انجام می دهید آفل نیست اولائی که الذین اشترون حیات الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون اینها همان کسانند که آخرت را به زندگی دنیا فروختند از این رو عذاب آنها تخفیف داره نمی شمد va kasi unha ro yari nakhohat jar wa laqad atayna musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ مَا بِمُوسَى كِتَابُ التَّوْرَاةِ دَادِين وَبَعْدَ ذُ الْيَامِرَانِ و به ای سبل مرگم دلائم روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم آیا چون نیست که هر زمان پیام چیزی بر خلاف هوای نفس شما آورد در برابر او تکبر کردید؟ پس اده ای را تکثیب کرده و جمع ای را به قصر رساندید؟ و قالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون و آنها از روی استهزاه گفتند دلهای ما در قلاف است خداوند آنها را به خاطر کفرشان از رحمت خود دور ساخته و کمتر ایمان می آورد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 از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد که موافق نشانه هایی بود که با خود داشتند و پیش از این به خود نوید پیروزی بر کافران می دادند. با این همه هنگامی که این کتاب و پیامبری را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد به او کافر شدند لعنت خدا بر کافران باد би сам аштрау бихи анфусухум ан йакфуру бима анзалаллаху баддан ан ан yunazzilaллаху мин fadlihi ala man yasha'u min ibadihi fabaa'u bi ghadabin ala ghadabin mali anha در مقابل بهای بدی خود را فروختند که به ناروا به آیاتی که خدا فرستاده بود کافر شدند و معترض بودند چرا خداوند به فضل خیش بر هر کس از بندگانش بخواهد آیات خود را نازل می کند از این رو به خشمی بعد از خشمی گرفتار شدند و برای کافران مجازاتی خار کنند وَإِذاَا قِيلَ لهُم آمِنُ بِمَا أَنزَل اللَّهُ قالَاوا قالَاونُؤمِنُ بِمَا أُزِل عَلَنَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الحَقُّم صَدِّ قَلِّمَا مَهُم قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل این کنتم مؤمنین و هنگامی که به آنها گفته شود به آن خداوند ناصل فرموده ایمان بیاورید می ما به چیزی ایمان می آوریم که بر خود ما نازل شده است و به غیر آن کافر میشوند. در حالی که حق است و آیاتی را که بر آنها نازل شده تصدیق می کند بگو اگر راست میگویید و به آیاتی که بر خودتان نازل شده ایمان دارید پس چرا پیامبران خدا را پیش از این به قضل می و لقد جاءكم موسى بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون و نیز موسا ان همه معجزات را برای شما آورد و شما پس از غیبت او گو ساله را انتخاب کردید در حالی که ستمگر بودید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 و به یاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه تور را بالای سر شما برفراشتدیم و گفتیم این دستوراتی را که به شما دادهیم محکم بگیرید و درست بشنوید آنها گفتند شنیدیم ولی مخالفت کردیم و دلهای آنها بر اثر کفشان با محبت گوسال آمیخته شد بگو ایمان شما چه فرمان بدی به شما میدهد اگر ایمان دارید قل این کانت لکم الدار الاخرت عند الله خالصتا من دون الناس فتمنه الموت این کنتم صادقین بگو اگر آنچنان که مدعی هستید سرای آخرت در نزد خدا مخصوص شماست نه مردم پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می‌گویید ولین یتمنو ابدا بما قدمت والله علیم بالظالمین ولی آنها به خاطر اعمال بدی که پیش از خود فرستاده اند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خداوند از ستمگران آگاه است ولا دديداً لهم احص الناس على حياتي وم الذي أشر يوددو أحدهم لوّ الفسنتي وما هو بمزحزح من العذب. و ما هو بمزحزحه من العذاب اي وعمر والله بصير بما يعملون و آنها را حریزترین مردم حتی خريز تر از مشرکان بر زندگی خواهی یافت تا آنجا که هر یک از آنها آرزو دارد هزار سال عمر به او داده شود در حالی که این عمر طولانی او را از کیفر الهی باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال آنها بیناست قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدن وبشرى للمؤمنين آنها می گویند، چون فرشتهی که وحی را بر تو نازل می کند جبرئیل است و ما با جبرئیل دشمن هستیم به تو ایمان نمی آوریم. بگو، کسی که دشمن جبرئیل باشد در حقیقت دشمن خداست، چرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل کرده است، در حالی که کتب آسمانی پیشین را تصدیف می کند، و هدایت و بشارت است برای مؤمنان من ك عدولهه ومل كتی ورصله وجبریله وك فِ الله فإن الله عدول للكافین کفی که دشمن خدا و فرشتگان و رسولان او و جبیل و میکائیل باشد کافر است و خداوند دشمن کافران است ولقد انزل الیک آیات بینات وما يكفر بها الا الفاسقون ما نشانه های روشنی برای تو فرستادیم و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی ورزد او و كلما عاهدوا عهدا نبذوه منهم بل اكثرهم لا يؤمنون و آيا چنین نیست که هر بار آنها یهود پیمانی با خدا و پیام بربستند جمعی از ایشان آن را دور کندند و مخالفت کردند آری بیشتر آنان ایمان نمی آوردند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 و هنگامی که فرستاده ای از سوی خدا به سراغشان آمد، و با نشانه هایی که نزد آنها بود مطابقت داشت، جمعی از آنان که به آنها کتاب آسمانی داده شده بود، کتاب خدا را پشت سرف کندند، گویی هیچ از آن خبر ندارد.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 و يتعلمون ما يضروهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما لهو في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بهی انفسهم لو كانوا يعلمون و یهود از آن که شیاتین در عصر سلیمان بر سلیمان هرگز کافر نشد ولی شیاطین کفر ورزیدند و به مردم سهر آموختند و نیز یهود از آنچه که برد فرشته بابل حاروت و ماروت نازل شد پیروی کردند و به هیچ کس چیزی یاد نمی مگر اینکه از پیش به او می ما وسیله آزمایشیم کافر نشد ولی آنها از آن دو فرشته مطالبی را می آموختند که بتوانند به وسیله آن میان مرد و همسرش جدائی بیفت کنند. ولی هیچگاه نمی توانند بدون اجازه خداوند به انسانی زیان برسانند آنها قسمتهایی را فرامی گرفتند که به آنان زیان می و نفعی نمی و مسلما می دانستند. هر کسی خریدار این گونه متا باشد در آخرت بحر این نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند بود آن چه خود را به آن فروختند اگر می دانستند ولو انهم آمنوا و اتقول مثوبت من عند الله خیر لو کانوا یعلمون و اگر آنها ایمان نیاوردند و پرهیزگاری پیشه می کردند پاداشی که نزد خداست برای آنان بهتر بود اگر آگاهی داشتند یا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب الیم ای افراد با ایمان نگویید رائنا بلکه بگویید انذرنا زیرا کلمه اول هم به معنی ما را محلت بده و هم به معنی ما را تحمیق کن می باشد و دستاویزی برای دشمنان است و آنچه به شما دست دور داده می شود بشنوید و برای کافران و استهزا کنندگان عذاب دردناکی ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ كافران اهل کتاب و همچنین مشرکان دوست ندارند که از سوی خداوند خیر و برکتی بر شما نازل گردد در حالی که خداوند رحمت خود را به هر کس بخواهد اختصاص میگهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها Aلم تعلم أن الله على كل شيء قدير هر حکمی را نسخ کنیم و یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم بهتر از آن یا همانند آن را می آبریم آیا نمی دانستی که خداوند بر هر چیز تواناست؟ Aلم تعلم أن الله له ملک السماوات والأرض و ما لکن من دون الله من ولی ولا نصیر آیا نمی دانستی که حکومت آسمان ها پو زمین ازان خداست و جز خدا ولی و یاوری برای شما نیست ‫ام تريدون ان تسألوا رسولكم کما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ظل سواء السبیل ‫آیا میخواهید از پیانبر خود همان تغازای نامعقولی را بکنید که پیش از این از موسى کردند ‫کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد از راه مستقیم گمراه شده است ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو فعفو وصفحو حتى يأتي الله بی امره این الله على كل شيء قدير. بسیاری از اهل کتاب از روی حسد که در وجود آنها ریش دوانده آرزو می شما را بعد از اسلام و ایمان به حال کفر بازگردانند با اینکه حق برای آنها کاملا روشن شده است شما آنها را عفت کنید و گذشت لمایید تا خداوند فرمان خودش را بفرستد خداوند بر هر چیزی تواناست و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاه و ما تقدموا لی انفسکن من خیر تجدوه عند الله این الله بما تعملون بصیر و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و هر کار خیری را برای خود از پیش میفرستید آن را نزد خدا خواهید یافت خداوند به اعمال شما بیناست وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك اماني هم قل هاتوا برهانا قم ان كنتم صادقين <متوس> انها گفتند هیچ کس جز یهود یا نصارا هرگز داخل بهشت نخواهد شد این آرزوی آنهاست بگو اگر راست میگویید دلیل خود را بیاورید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجروه عند ربه فله اجروه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون آره کسی که روی خود را تسلیم خدا کند و نیکو کار باشد پاداش او نزد پروردگارش ثابت است نه ترسی بر و نه غمگین میشوند وقال اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقال النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بینهم يوم القیامة فيما كانوا فيه يختلفون يهودیان گفتند مسیحیان هیچ موقعیتی نزد خدا ندارند و مسیحیان نیز گفتند يهودیان هیچ موقعیتی ندارند در حالی که هر دو دسته کتاب آسمانی را می خانند افراد نادان دیگر همچون مشرکان نیز سخنی همانند سخن آنها داشتند خداوند روز قیامت در آن چه دران اختلاف داشتند داوری می کند و من اظلم من, من منع مساجد الله این یذکر فی هسمه و سعا فی اولئی کما کان لهم این یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم چیست ستمکار تر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری گیری کرده و سعی در ویرانی آنها نموده خاویسته نیست آنان جز با ترس و وحشت وارد این کانونهای عبادت شوند بحرۀ آنها در دنیا فقط رسوایی است و در آخرت عذاب عظیم الهی ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله این الله واسع علیم مشرق و مقرب ازان خداست و به هر سو رو کنید خدا آنجاست خداوند بی نیاز و داناست وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون و یهود و نصارا و مشرکان گفتند خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده است منزه است او بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است ازان اوست و همه در برابر او خاضعان بانی السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون هستی بخش آسمان ها و زمین است و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند تنها می موجود باش و آن فوری موجود می شود و قال الذین لا يعلمون لولا یکلمون الله او تأتینا آیه کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینن ال لقوم یوقنون افراد ناآگاه گفتند چرا خدا با ما سخن نمی و یا چرا آیه و نشانه ای برای خود ما نمی آید پیشینیان آنها نیز همین گونه سخن می گفتند دلها و افکارشان مشابه یک دیگر است ولی ما به اندازه کافی آیات و نشانه ها را برای اهل یتین روشن ساخته ایم این بالحق ب و ندیرا ولا تول عن آصفجخیم ما تو را به حق برای بشارت و بیم دادن مردم جهان فرستادین و تو مسئول گمراهی دوزخیان پس از ابلاغ رسالت نیستی ولن تردارن کالیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل این هدى الله هو الهدى ولا لئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصير هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا به طور کامل تسلیم خواسته های آنها شوی و از آین تحریف یافته آنان پیرفی کنی بگو هدایت الهی تنها هدایت است و اگر از هوا و حوث های آنان پیروی کنی بعد از آنکه آگاه شده ای هیچ سرپرست و یاوری از سوگ خدا برای تو نخواهد بود الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُمْ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَائِكَ اولائک یؤمنون به و من یکفر به فاولائکهم الخاسرون کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم آن را چنان که شایسته آنست است می‌خوانند آنها به پیامبر اسلام ایمان می‌آورند و کسانی که به او کافر شوند زیانکارند يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم و اني فضلتكم و اني فضلتكم على العالمين اي بني اسرائيل نعمت مرا كه به شما ارزاني داشتم به ياد آوريد و نيز به خاطر آوريد كه من شما را بر جهانیان برتری بخشیدند وتذقوا يوما لا نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ولا هم ينصرون اغروزي که هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند و هیچ گونه عوضی از او قبول نمی شود و شفاعت او را سود نمی و از هیچ سوئی یاری نمی شود و ایدی بتلا ایبراهیم ربه بکلمات فعتم بهن قال اني جاعلك للناس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بخاف راوید هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از اهده این آزمایش ها برآمد خداوند به او فرمود من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم ابراهیم ارز کرد از دودمان من نیز امامانی قرار بده خداوند فرمود پیمان من به ستم کارا نمی رسد و تنها آن دست از فرزندان تو که پاک و مقصوم باشند شایسته این مقامند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 انطهیر بیتی للطائفین والعاکفین و الرکع السجود و به بیاورید هنگامی که خانه کعب را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم و برای تجدید خاطره از مقام ابراهیم عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای تواف کنندگان و مجابران و رکوع کنندگان و سجد کنندگان پاک و پاکیزه کنید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 و بئس المصير. پس یاد آورید هنگامی را که ابراهیم عرض کرد پروردگارا این سرزمین را شهر امنی قرار ده و اهل آن را آنها که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده‌اند از ثمرات گوناگون روزی ده گفت دعای تو را اجابت کردم و مؤمنان را از انواع برکات بهرمن ساختند اما به آنها که کافر شدند بهره کمی خواهم داد سپس آنها را به عذاب آتش میکشانم و چه بد انجام است و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعيل ربنا ربنا تقبل منا ایندک انت سمیع العلیم و نیز به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم و اسماییل پایه های خانه چهبه را بالا می گردند و می گفتند از ما بپذیر که تو شنوا و داناد ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا و مناسكنا و ارنا مناسکنا و تب علينا اینک انت التواب الرحیم پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتی که تسلیم فرمانت باشند به وجود آور و طرز عبادت را به ما نشنده و توبه ما را بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم فرغارا در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیزد تا آیات تو را بر آنان و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند زیرا تو تو توانا و حکیمی و بر این کار قادری و من یرغم عن ملتی ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد استفیناه في الدنيا و انهو في الآخرة لمن الصالحین جز افراد صفیح و نادان چه کسی از آین ابراهیم با آن پاکی و درحشندگی روی گردان خواهد شد ما او را در این جهان برگذیدیم و او در جهان دیگر از صالحان است قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین دران هنگام که پروردگارش به او گفت اسلام بیاور و در برابر حق تسلیم باش او فرمان پروردگار را از جان و دل پذیرفت و گفت در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم و وصابها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لکم الدین ان الله اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون و ابراهیم و یعقوب در واقع به این آئین وسیعت کردند فرزندان من خداوند این آین پاک را برای شما برگزیده است و شما جز به آین اسلام از دنیا نرم ام کنتم شهداء حضر یعقوب الموت ایذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالو قالوا نعبد الهك و اله آبا ءك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق الههم واحد و نحن له مسلمون آيا هنگامي که مرگ يعقوب فرا رسید شما حاضر بودید در آن هنگام که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را می گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماییل و اسحاق خداوند یکتا را و ما در برابر او تسلیم هستیم تیل که امت قد خلد لها ما کسبت و لکن ما کسبتم و لا تسالون عن ما کانو آنها امتی بودند که درگذشتند. اعمال آنان مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست و شما هیچگاه مسئول اعمال آنها نخواهید وقالو کنو هودا او نصارا تهتدو قلب الملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین اهل کتاب گفتند یهودی یا مسیحی شوید تا هدایت یا بید بگو این آینهای تحریف شده هرگز نمیتواند موجب هدایت گردد بلکه از آین خالص ابراهیم پیروی کنید و او هرگز از مشرکان نبود قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ و ما اوتی موسى و عیسى و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون بگو ما به خدا ایمان آورده ایم نازل شده و آنچه بر ابراهیم و و پیامبران از فرزندان او نازل گردید و همچنین آنچه به موسی و ایسا و پیامبران دیگر از طرف پروردگارشان داده شده است و در میان هیچ یک از آنها جدایی قائل نمی‌شویم و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوُ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا مُنْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اگر آنها نیز به مانند شما ایمان آورده اید ایمان به هدایت یافته‌اند و اگر سرپیچی کنند از حق جدا شده‌اند و خداوند شر آنها را از تو دفع می‌کند و او شنونده و داناست سيبرا الله و من احسن من الله صبرا ونحن له عابدون. رنگ خدایی بپذیری رنگ ایمان و توحید و اسلام و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است و ما تنها او را عبادت می‌کنیم قل اتهجونا فی الله وهو ربنا و ربکم ولنا ولنا ونحن له مخلصون بگو آیا درباره خداوند با ما محاجه می کنید؟ در حالی که او پروردگار ما و شماست و اعمال ما ازان ما و اعمال شما ازان شماست و ما او را با اخلاص پرستش می کنیم ام تقولون این ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباق کانو او نصارا قل اانتم اعلم ام الله و من اظلم من من کتم عنده من الله و من الله بغافل عن ما تعملون یا میگوید ابراهیم و اسماییل و اسحاق و یعقوب و بودند بگو شما بهتر می یا خدا و چه کسی ستمکار تر است از آن کس که گواهی و شهادت الهی را که نزد اوست کتمان می کند و خدا از اعمال شما قافل نیست تیل که امت لها ما کسبت و لكم ما کسبتم و لا تسألون عن ما كانوا يعملون آنها امتی بودند که در آنچه کردند برای خودشان است و آنچه هم شما کرده اید برای خودتان است و شما مسئول اعمال آنها نیستید